Ala ay majahidin ala shairi sangar ki qasdi safar kardai soyi kishwar ala ay majahidin ala shairi sangar ki qasdi safar kardai suikishwar kishwar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar bayan kaz mirasti khahi راه ایمان روانین پاین محو دشمن بسنگن کند بر سرت سایه بانی ملائیک تو را دوست دارد خدا و پیامبر بیان که از می‌راستی خواهی راه ایمان روانین پاین محو دشمن بسنگن کند بر سرت سایه بانی تو را استارت خدا و پیامبر الا ای مجاهید الا شهری سنگر کی سفر کرده سوی کشور الا ای مجاهید الا شهری سنگر کی دی سفر کرده ای سوی کشور تفنگ بر کافی تو قلم بر کافی من زنم بر دلی دشمنان تیر بزن بر سفید دشمنی دین و ملت با قلبی تک بیری الله اکبر توفن بر کفی تو قلم بر کفی منزل بر دلی دشمنان تیر خانجر بزن بر سفید دشمنی دین و ملت با قلبی تک بیری الله اکبر الله ای مجای الا شری ساننگلکی خست دی سفر کردی سوی سنگر کی شوور اللا ع مجای اللا شریساننگلکی خ دی سفر کردی سوی کی شوور اللا ما در حالاللی تو بادا حالاللی تو با دا همان شری مادر بوب پنجکری خون چکانی وتن را تن رارها رها کنزی دستی ستم گر علا شیری مادر حلالی تو بادا حلالی تو بادا همان شیری مادر بو بین پنکری خون و تن را و تن kun zi dasti sitam gar ala ay mojahid ala sheri ki khasti safar kardayi suyi ki ishwar allah ay mojahid ala sheri ki khasti safar kardayi suyi ki ishwar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar